الحمد لله رب العالمين و صلی اللہ علیه سیدنا رسول الله و آله سیدین و خاهرین المعصومین و لعظه دائمت و علیه ارزای عظمین اللهم افرنا جمیع المشترین و همه رحمتی که یا ارحمه رحمی این سوی که در کلمات علماء اسلام از همه اوائه یکی دو بحث راجع به سر کاملا محل کلام بوده یکی سر طبیعت داره یا خیالات و تنویح و خدا و نیرنگ و فریده یکی هم اقسام سر که کدام قسمش حرامه کدام قسمش حرام نیست غیر از احکام سر که آیا مثلا تو قرار نداره فاصل میشه نمی‌شه بحث دیگه اصل دین و مبلاغ تحسین ورزی هایی و صحبت های از همون قدیم شده یه متن اهل سنت خونده میشه 3 درس و 4 درس کرده محل که امروز این اینجا این پیاده مشغولی معنی نیست که مرحوم شهنصاری در این قطور متأخر ما از بهار نال کرده و مرحوم استاد رو این معظ به اصطلاح مانور رو و این تحسین ورزی هشونه ما فعلا محور صحبت رو به خاطر اینکه هم کتاب مکاسب شیخ است و هم کتاب اصال و همین محور هشکانه این محور هشکانه از که من میدونم اطلاعات من استقام کامل نیست اولین بار در کتاب فخر رازی آمده تخ رازی در تفسیر خودش در ویل آیه ما اونزرال ملکیم به بابل هاون و علم و نصر هشت قسم میکنه مخصوصا قسم اولیش که سهر کلدانینه خیلی تفسیر صحبت میکنه فیلی زیاده مسافا خیلی طولانی صحبت می‌کنه و بقیه رو اینقدر طولانی صحبت نمی‌کنه تو بقیه احسان این هش قسم کردن تا اونجایی که من بلدم والا میگم معلوماتش کامل نیست اولش فخر رازی از روز قرن هفتم بعد از در قرن نهم این نیشابوری تفسیری داره نذارالدین نیشابوری که قومی اهل نیشابور نیشابوری اهل قومی کسی از شب هم مدرن نیشابوری داشت به اصل از اهل سنت رابطه شیعه نیست. بله ایشون در تفسیری داره که این تفسیر چاپ قدیم هم داره که من دارم چاپش با کتاب تفسیر تبری حاشیه تبری چاپ شده. شینه چاپ شده، نسخه نه ای چاپش. چی قرار مول قران قرار مول قران، قرار مول قران، شی چی؟ قرایبل قران و قرایبل سورها میگم که اسم می‌ده. در این کتاب هم در همین زیگاه ای مبارکه خیلی موجد کلام و فخرازی رو اوزه اصلا نبوده نسبه به فخرازی نبوده بعد نسبه در هشت اسمه مربون مجدسی در کتاب بهان در جلد پنجا و فخر کلام رو اوزه در این تقسیم هشتگانه و در جلد شست و در اون بابی که مربوط به سهره کلام نشابوری رو اوزه یکی همه هر یکی اصلش مال فخر مرحوم شیخ انصاری هم از این جا کرده از این جلد 63 استاد هم از همین جا از همین ایشون اسم برده جلد 63 از همین محور نقل کرده از اونجایی که تفصیل کلام فخر رازی مرحوم استاد نقل کرده این راجع به تقسیم ثمانیه به قوله و استاد خیال کردن که ما ذکر اول اصحاب این این چیزی که اصحاب ما گفتن من این راجع به اصحاب منم ارسونم که خب در این تقسیم سمانیه قسم اولش به تحویل ایشان سهر کلدانی بود که از کلم کلدان همون بابل که منطقه جنوبی بین النهره اینه از بغداد فعلی پایین تره این رو اصطلاحا بابل میگفتن منطقه شمالی رو اصطلاحا جزیره میگفتن که الان میگن شمال ایرام منطقه کرد میشین ایرام به جغرافیایی اول جزیره از پکلیس بود همین شهره ای که این برسیر خدیثی از اونجا بوده. اصلا پکلیس رو جزو ایراق حساب نمی کردن رو جز جزیره حساب می از پکلیس به بالا تا حدود شام رو جزیره می ما بین نحیل رو مادد دجل و فرات رو اطرافش رو وقت پایینه قسمت پایینی رو که حدود بالای کربلا میشه بین کربلا و از بین بغدار از زیره کیش، سوسن یا پای تخت ایرانی ها بود. پایین ترش بابل بود که تمدن قدیمی داشت و اصلا چون در اینجا منطقه هاسکسیزی بود یکی از مناطقه قدیمی تمدن بشری است. و الان هم تا این زمانی که بنده در خدمت هستم به استثنای چیز مختصری به عنوان اولین مرکزی که قانون مدنی در وجود داشت بابل پازشاه محروفی دینام هموراوی داره مواد قانون هستی که چه هزار ماده است کمتر سه هزار اصول کرده. ماده قانونی سه هفت سه هستار من دقیقم توی ذهنم دیدم کتابشان دیده چاپ شده مثلا موران کتاب چاپ شده مسئله چاپ شده مسئله همون قانون هموراوی حراج ها چاپ شده و این قانونی است که الان الان بشر داره آن مدرد از کلمه یه شده. کم کمه چند تا سنگه است در جنوب یمن اون مال پنج هزار سال خورده ای، اون قبل از اینه بلاخت به طور موجود که الان ما داریم تحبیر قانونی همین است. هست بدن نیست اگر آنی که مخوان کار قانونی رو کنن اطلاع برای این کتاب پشنگه چون من یه توضیح دادم این کتاب بیشتر قوامینش شبیه بعضی روایات ما جنبه استفتایی داره مثلا اگه یک مزیده را از یک گاوی بخرد این قیمت بعد بفروشد به اون قیمت بعد اون اینجوری یه ریزه ریزه داره جنبه قانونی کلی مثل لازن اول از توش نیست از زعی مغارب که مثلا و محدوده از زعی مغارب این متون مثلا مثلا اینطور متون به عالی و والای قانونی توش نیست خیلی متونش ریزه است شبیه استفتاء این کتاب حمورابی که من نگاه کردم خیلی از این جهت شبیه مثلا روایات ماست که جنبه‌های های استفزایی داره یعنی خصوصیات و ریز توش هست یعنی باید به روایات دیگر اون پارون ازش استنتاج بکنه خودش متسدیع جزئیات و ریزه کاری ها شده در حال کتاب مفیدیز. یعنی انصافه برای آمون که مخواالقان کار بکنن مثلا برای روانهتشی کل منطقه همون بین در از و درین خیلی موثر در فهمم از قوان و ادعا شده که مرزی از قوانینی که الان با عنوان ماده قانونی ما داریم مثل همین چیه منحاضشی انفرند که این آی کویمش شاید میزن که سنده جراخ سنده سنده نداره سنده واضحی نداره این در کتاب سنده قانون بوم قدیمه بوم باستانه منحاضشی انفرند ملن. از این نصوص قانونی رو پیدا کرده در این هاش رو پیدا کردن در بخش فقه خیلی ک در غیر هم ما داریم اما در فقر انصافاً خیلی کار سازیم به حال به یک مقدار به خود جناب به شهر کلده و بابل هم مخصوصاً علم نجون و سه نسبت داده شده فخرازی معتقد است که این سهی که بینها و جادوگری که بینها نسبت داده شده داری یک زیربنای فکری هم بوده سهرون ها مجرد این که یه چیزی انجام دادن انجمادی رو نبوده. اعتقاد داشتن به اینکه مثلا ستارگان خدا هستند، ارتباط با اونها پیدا میکنن یک نوع روحی با ستارهگان و ارواح ستارهگان و این‌ذرا موفیس موفیس از اون راه و اعتقادی هم به خدا نداشتن. یعنی به عبارت دیگر یا به اصل خدا اعتقاد نداشتن یا به خالقیت خدا اعتقاد نداشتن. مثلا خدا هست اما تمام اداره جامعه دنیا و دست همین یعنی این سهر یک نوع زیر بنای فتیه محین داشته این شده از سهر کلدانی تعبیل ایشان و اجماله هم درسته از معروف هم اینه که همین سهره بادر بودن که اصلا نسخ با حضرت موسا و داخامان و در افتادن هم همین سهره بادر بودن و درست هم هست مطلب صحیح است و این مطلب فخرازی در اینجا خیلی صحبت طولانی راجع به بحث های به اصطلاح تفکرات قدیم راجع به نجوم و ستارگان و داره روح هستن نیستن داره نفسن نفسشون مجرد چیز حرکت ارادی دارن دید. مفصل ایشون در اینجا صحبت هسته که در جلد پنجه و آمده از اون چاپی که فهرسته ستشه هم آمده بعدی شما که نهوسته در اون جلد در از سماول عالم، بابی داره باب اسمت الملائکه و قصت تا و مارود در این باب مفصل کلام فخرازی رو اوگرده که متعرض شد این مناسبت فهم خود مروم مگیسی هم کلام فخرازی رو به خاطر تفسیر آقای مبارکه اوگرده دنبال این بحث شدیم که این منشأ شده که در میان مفسرین و علمای اسلام یک مقدار سه رو به همین هاروت و مارود و بابل اینها نسبت بدن به خاطر این آیه مبارکی که یه روز خوندیم من از کرد این آیه مبارکی که از آیاتیست که در تفسیرش اقوال خیلی زیاده احتمالات خیلی زیاده البته ما هم که انسان با گذشته زمان نمیتونیم خیلی جذبه اما وقتی که انسان کلمات مفسرین اوائل رو با دقت نگاه میکنه میفهمه همونی که ما به ذهنمون ابتداعا آمده بود این مطلب مطلب درستیه باید من اول یه توضیحی بدم بعد بقیه یه آیه رو می توضیح بدیم که از بحث آشاش می خارج شدیم دنبال کارو خودون بگیم هست شد که اون آیه مبارکه از آیه 102 اما آیه 101 و... توضیح هم روز انس کردن اگر انسان توفیق بداردن از آیه چهه تا این آیه 103 و 4 بخونه یک نواخ می دیمه تمام کتاب به بنی اصالی و مشکلاتی که یهود داشن و چون گفته شده بقره من عوائل ما نظرف المدینه بعید نیست که یکی از بحث های به اصطلاح فیغمبر در همون سالهای اول مدینه این بحثایی بوده که در این آیات اشاره ونها شده خطاباتی که به اهل یهود هست من طوریه چه سابقاً کردم فیغمبر حکم خیبواز مدینه شده یک قراردادی به اصطلاح موجود چی بشونگم پرز و قرارداد یک معاهده یک اهنامه بین خودشون و یهود نوشتند این رو عرض کردم که خود این قرارداد دغدها جزوی که از مصادر سنت شد یعنی که از مصادری که خواستن سنن برای جمع آوری بکنن این متن قرارداد با یهود از این قرارداد در متون قدیم اسلامی مثل العمال ابو و دیگران آمده در خبری آمده و متفرقه است یه مقداری ح و اصلاح میخواد جامو و میخواد. یکی از این مستشرین معثر جمع کرده اون های سر آمده به فاسی تزره که نخستین قان اساسی جهان دنیا میید. این همین قرارداد و جمع که یک حسن صلیقه ای هم بهقال شماره گذاری کرده.طبرق شماره گذاریشون 5 و2 ماده قانون می که پیغرککنبولیه اکرم م یهود قرارداد، این 52 از متفرقات جمع آوری کرده پنج دو ماده باران. این همون لده در مدینه است چون من یک توضیحات از کرد این خیلی معصفه بحث ما الان اینجا نیست من بعضی از مطالب زیاد تکرار میکنم چون این خوب غلاده اون بحثی که اصولا مطرح بود که باید سنن فیغمبر جمع بشه این بحث از کردم از زمان دومی امیر مطرح کردن که دومی هم زیر ب و الله این بحث محره بود که ما بیاییم سنن پیغمبر رو جمع بکنیم اشکال دومی من دوزن اشاره کردم یا میخوایم تکرار بکنم اگه ما این کار بکنیم چیزی شبیه تلمود میشه مشنا که مشنا احل کتاب مشنا و تلمود در اصطلاح اهل یهود تورات شفاهی حساب میشه در مقابل تورات کتبی که خداوند بر موسی نازر کرده از کلم احتمالاً عمر با ایده از یهود مدینه که آشنا بوده چون ایده از یهود خوشبین به مشنا نبودن. معظمشون خیلی خوشبین ایده که از اونها حتی بر تورات هم مقدم می‌دونن مثل اخباری ما. جسور اخبار رو هم بر قرآن مقدم میکنن میان قرآن رو مثل اخبار می‌فهمند. چون تلمود به طور کلیه مشنا به عنوان و شرح تورات به کار برده می‌شد به اون تورات شفاهی هم گفته میشه. حتی در شرحال علماء یهود رو که بعضا اونم بر قرآن مقدر توراد مقدر ده. حالا احتمال میدیم ما از اینکه که عمر رومنبر رسمن گفته بوده مشنا که مشنا کتاب مشنا همون مشناست ما بفاصی میمیم مشنا اونا میان مشنا مشنا که مشنا کتاب احتمال میدن عمر نظرش این بوده که اگر سنن رو به این میشه قرآن شفاهی اما مثل این اشکال وارده این درسته الان مثل است چونکه قرآن خودای قرآن کتبیست اون قرآن شفاییست این درسته این مطلب مطلب درستیه اما این قیاس شریعت مقدسه خاتمی رسول الله به شریعت حضرت موسی اون باطله بردشم اصلا معلوم نیست که حضرت موسی سننی داشته از اشکال اینه یعنی این واضح نیست که حضرت موسی در مقابل کتاب سننی داشته دستانتی که پیمنبر قطعا در, در مقابل کتاب سننی داشته این دو ساره این... گفت که شیخ ناخبو وردالر بیلی سباک دعا باید که اشتباه عمر در اینه اینه که می فهمه خدا انمی مناسک اکام این جزو سنن پیغمبری سلو تماره ایتومونی او سلوی جزو سنن پیغمبر ذکر رکوع، ذکر سجود عدد رکعات ثبوت و چهار اینا همه جزو سنن به بعد یعنی این اینطور نبوده که سننه ما شواهد نداریم که حضرت موسی بعد از حضرت تورات هم سننی داشتن. لذا این نباید به اون قیاس می شود و بلعث اگر همون زمان صحابه این کار انجام می دیگه بحث حجت خبر هم که این آده ما بحث میکنه احت... احت... احتیاج نداشت چون تمام سنن به امضای صحابه می رسید این کتاب اتفاقی می شد. البته به عنوان شارح و مکمل قرآن حساب می شد. و حرفش این بود که ما شارح و مکمل برای قرآن قرار ندیم حرف عمر این بود یک احتمال هم ما که عمر فکر میکرد این احتمال من عبارت میشه هموند که خوندی، عبارت دیگه احتمالی که من دادم این که عمر میگه اگه بخواهیمم بکنیم این کار رو انجام بدیم مجبوریم به روشوب به امیر المؤمنیم این کار رو انجام بده مرجعیت علمی اهل بیت رو نمیخواستن از همون اول تصویت بکنن و هر حال این کار او ضربه سنگیری بعد ضربه یعنی چون به هر حال سنان پیغمبر با تدمیم میشه. از کل یک اختلاف معهومی هست بین اسلام و بین یهودیه و به فیلم موسیقی هم کردن دیگه بعد حدیث نوشتن سن... این... این چون واقعیتی بود این یک چیزی نبود که کسی مثل عمر بخواد جروع شدید حالا این نکته خیلی نیم خواهیم جلان صحبان بکنن. بعدها عمر نهردالعزیز به فکر تدوین شدن افتاد سال سد مثلا سال چارده به فکر تدوین بودن کجا سال 100 کجا بیشت سال 100 به فکر تدوین افتاد من میخواهم این بکنم وقتی که به فکر تدوین افتاد این فکر مطرح شد که ما این را از کجا جمع بکنیم این خیلی مسئله هنوزم اثر داره نشیدار بکنیم مال زمان عمر نهردالعزیزه وقت فرستاد به مدینه یه مقدار از این نوشته ها رو جمع کرد این میخواب ارزه این خیلی مسئله لکیفیه مثلا بعد از قصه سال غده بیه که با مشکین شد سال هفتم وفود آمال وفود بشین گرد گروه گروه از شهرهای مختلف اشارت مختلف میمونن و پیغمبر اسلام میمونن خیلی از مطالب رو پیغمبر دستات نامه به اون طرف میدازن این نامه ها این نامه یکی از اوامل بسیار مهم برد ها برای تقییم سنن شد همین نامه ها همین قرار داده پیغمبر با یهود یکی از نقاطی شد که برد ها برای سنن جمع شد اینه چون در فقه ما این شما این مطالب در فقه ما نمی این در فقه کل اسلامی و انصافن هم زیاد نیست انصافش هم زیاد نیست اما با ارزشه مثلا یه مقدار زیاد میشه که مربوط به امور مالی میشه کتاب هموال ابو عبید آمده که محاصر امام جواده میشه 20-22 رو نگه ابو عبید بسه بسیار کتاب خوبی هم هست هسته کتاب ابو عبید مثلا قبلش یه مقداری زیادهش توی خراج ابو یوسف آمده ابو یوسف نادم ساله هشه در مول مفاتشه قبل از ابو عبیده اما در کتاب ابو عبید خیلی مصطوفا آمده، قرار است این که شما شنیدین از نظر من کاملش نمی‌گم لیست کاملش نمی‌خوام چون بحثم در اینه احساس قرار این کارهایی که پیغمبر اکرم با یهود انجام دادن در ابتدای ورود میشه بس این آیاتی که اینجا اومده اونی که در ابتدای ورود بود یکی از منابع سنت پیغمبر داشت یکی از منابع بود یکی از منابع مهم رساله پیغمبر نامه‌ای بود که اون در سال 70 نوشته نار افراد رو فرستن که مخصوصا تو بحث های اقتصادی و مالی یک بحث های کلیدی خیلی اثر داره چون ادهی هم آیونی که فقه اسلامی رو در اقتصاد اسلامی نرشتن نتوانستن خوب ریشیابی بکنن البته کتاب های دیگری هم هست بعد افراد و پیغمبر به عمل فرستن با اونو نامه فرستن که بعضی از بحث های کلیدی مهم در باب حدود و دیات و اینها و نام ها آمده این مجموعه رو عمر بن عبد العزیز سعی جمع بکنه که موفق نشد سال سدی که فوت کرد یا کشته شد دیگه این مجموعه سامانی به خودش نگرفت این سامانه این ای که در سال شروع کرده بود حالا من دیگه واسه بحث میشم و در خود آیات قرآن هست صحبت با یهود و خصوصیات اونها نسبتا زیاده است بعضی از تعابیری هم که در قرآن راجع به حضرت داره مورد سردر فردی، یعنی در هیچ پیامبری از پیامبرها، مثلا تو که نفسی این کتاب از دست نیست، لستانات که نفسی در هیچ پیامبری گفته نشده که این بصره در این آیه صلواه خداوند، این آیه صلواه دو که بر تلاطمات توضیح دادیم، از قبل می‌کنیم که از آیات بسیار مغلق به مربوطیت مرهمه اللهون تابوت‌هایی در قرآن نظیر نداره در ابها و اجماع. حالا اگر این ظاهر بیوم آیه قبلش از که حدود شست آیه قبلش راجع به یهود یا بنی اسرائیل از اونجا شروع میشه تا اینجا احتمال میدم اینا یک زمان نازیه شده یک نوع مثلا چهار سالهای اول دوم یک تعاویر یک نباختی داره یعنی انسان حس میکنه که مجموع این شست آیه, شست آیه اینا دنبال یک هدف واحدی هستن آیه قبلش ولن ما جاه هم رسول من اندالله این که اشاره به رسول الله مصدقون لما ما هم ظاهرن ما مه اشاره به تورات باشه و ظاهرا این من چون جور دیگه معنا کردم من تو معنام شده اما بایدیم بعضی از مفصلین قدیم جور دیگه معنا کردم به نظرم اون معنا بشن کرده از اون معنا بیشتر بله لما ما هم این مراد از ما مه همون تورات که اسفار خمسه باشه نه بر فریق و منالدین و اوتول کتاب من دیدونم کتاب یعنی توبراد هست تصفیل شده اما دیدم ادهی از قدمای مفصلین نکته و ملتفه همین نکتهی که من گفتم و با حرف اونا به بهتر جود در میاد که این منظور کلام ادهی از یهود مبینه بودن که اینا سهر به کار می بردن از اون جامعه کلیه یهود مدینه فریق من منالدین و اوتول کتاب گفتن مراد از کتاب در اینجا دو کتاب بوده یکی مربوط بوده به سحر آصفی که مربوط به سحر بابل یعنی هاروت و ماروت خیلی حرف خوبیه در آیات مبارک در لغت عربی گفته شده که وزن فعل مضارع رو اهدافی است که این اهداف و اقراض متضادند مثلا گاهی برای تعظیم شخص اسمش می‌ذارن گاهی برای تحقیر شخص اسمش می‌ذارن سند در آیاتم که او تول ایرم داریم، او تول ایر میانی آتاهام الله فاعل او خداست به خاطر اعظمت نه. اینجا ظاهرا با شواهد دیگر برای تحقیر نه بر تعظیم نبوده فرق من اولین او تول کتاب، ادی از کسانی که کتابهای دستشون بوده، خوب دکتر می نویشتارهای دستشون بوده. این احتماله. ظاهر آیه بیشتر جنبه تحقیر این کتاب رو داره نه که خدا بگونها داره ولی ازا طبق این تصور کتاب الله گفتن مراده از کتاب الله توراته من در از گفتم قرآن اونم هست اون تفسیر به نظر من این تفسیر شندیشم نگاه می کنیم. کتاب تبایی رو تفسیر تبایی رو ادهی رو نهار کرده که کتاب الله مراد توراته ظاهرا مراد من می گفتن اون کتابی که اوتل کتاب یکی سهر بابل بوده یکیم سهر آصف حالا آصف ابن برخیه به عنوان وسیعی حضرت سلیمان سلام الله هست پس این طریق من این اوتل کتاب این اوتل کتاب یعنی یک ادهی که یک نوشتابی داشته کتاب الله رو که تورات بود برای ظهوره نه رسول من اندلاع رسول الله مصدق من نیم ما معهم ما معهم نه نمصدقون ما معهم یعنی پیغمبر اکرم تصیغ حضرت موسی او تورات کرد ما معهم تورات را یعنی حضرت پیغمبر اکرم همون افکار حضرت موسی رو تغییر کرد و نبود فرقی قوم نل دین و اول او کتاب ادی کتابهای داشتن نوشتاری داشتن کتاب الله اینا تورات رو کنار گذاشت. یعنی به عبارت نخره اگر می به تورات عمل کنن تورات با قرآن یکی بود اون می‌کنیم. میکنیم اینا نوشتارهایی داشتن که پهبه اون نوشتار اینها به کتاب الله خودشون که تورات بود عمل نکردن خیلی لطیف به تصادف من فکر می‌کنم اگر در کلمات ادمای مفصل مفصلی و زید خیلی لطیف معنای آیه ما اینو دیگه ابهام پیدا نمیشه اصلا تصریح کردن دو نویسدار بوده یکی راجع با عاصف به اسلام و اینی راجع به حضرت سلیمان و عاصف به این برخی ها یکم راجع بابه هاروت و مارود. که من برادر آیه بعدی این دو تا قشنگ روشن میکنه و دیگه ابهام درداشته ایشون ابهامی شدیدی که مرحوم علامه یا دیگران نوشته خای نه از بین میره پس نبل فریق من الذین اوتل کتاب عده از اهل یهود که نوشتگار داشتن این اوتو کتاب در اینجا از باب تحقیره نوشتگاه های دستشون بود این درست این کتاب. این کتاب. این یعنی درست... نوشتگی اوتو کتاب منظور همون اینجا اینطوری مورده میگم نظام, نظام تصیح کردن کتاب الله یعنی طوراز برای همین تصیح کردن اوتو هم خاصه متعال در حقیقت نکته دیگر رو بر میکن بسیار قیمت بود. یعنی این کتاب ها اصل نداشتند، باقول ماها زمان معفقلا به نحو وجاده بود آ آره به تلگی خود بود. این اول او کتاب دقت بکنید. کتاب‌ها و نوشتار هایی که به اونها رسیده بود. این اشاره بینه که این نوشتار ها اصل نظر نظر نداشتند. تا اوراق در اختیارشون بود یکی رو با عاصف نسبت میزدن یکی هم به باقع، به مارود این اوتو کتاب رو بگیم معنا گرفتم نه کتاب الله و راه ظهوره تورات رو کنار زده بودم تورات اصل ولی ازا باقرینه که از سرم در چند تا از این در تا... تا... تورین میکنه. توری توری نهام میکنه تفسیر توری با سرمت که منو در کتاب الله توراته حرس خوبی یعنی انصافم من دیووز به قرآن معنا کردن اونم هست گفته شده اما انصافت به نظرم میاده همون معنا بهتر باشه کتاب الله و راه ظهوره و تعبیر دیگه قرآنی که انه هم لایعلمون خیلی عجیبه یعنی گویا خودشون رو اگر دقت بکنن میفهمن که این کتاب هایی که ادعا میکنن کتاب آصف و کتاب ها رو رو مارون اصل ندارن که انه هم لایعلم تعبیر تعبیر فلطیف که انه هم لا یعلمون که این دو کتاب اصل ندار وقت نبده فریق منالدین اوتو کتاب کتاب الله و را از ظهوره و تبعو اینا پیروی کردن این وام زمیره و تبعو برمیده به همون فریق اون فریقی که این نوشهار داشتن اتبعو وقت اون میگم در بعض ادرواز تبری آمده که دو کتاب بوده یکی مال سر بودی که مال بابه آیه مبارکه هر دو رو داره و طبعو یک ما و شیاطین علام ملک سلیمان دو بعد از یک سر و ما اونزل علال ملکیم به باقل هاروت آمارون و طبعو یعنی این و طبعو این کتاب اون کتاب این کتاب هایی که اصلاح به درستی نداشه و که امنام لای علمون این کتاب ها دو تا بوده یک ما و شیاطین علام ملک سلیمان بوده دو کتابی بوده به عنوان ما انزل علی الملکین به بابل، هاروت و ماروت و من این دیگه کشمال خودمو خودم آقایان بحث کردن این تطلو شیاطین چی؟ چون تطلو در اینجا ممکن است از پلاوت باشه یعنی پلاوت خاندن ممکن است از متابعت باشه ممکن است باید تقریب و شیاطین چون خود آیه سبا سبایی به اینه که تقریب با چون علا آمده تطلو شیاطین علامتیه که سلیمان از اون کلمه مولیش باز بحثیم خود من به ذهنم آمده این از سندگی نیچ رو نیچ کس نوشته به ذهن احتمالی که من دادم شاید عنوان این نوشتار این بوده اصلا اصلا عنوان نوشتار و اگر هم ابهامی در عبارت هست به لحاظ این این تکروی یعنی چی مولتستوری هنری چی این ابهام ناشی از همون عنوانی بوده که این یهودی ها اون کتاب رو به عربی عنوان داده بودن مثلا احتمالا این عنوان بوده حالا ما تطل و شیاطین علام ملک سلیمان مثلا عنوان کتاب این بوده مثلا عنوانش ما تطل و شیاطین علام ملک سلیمان بوده که ازش تحریر شده به سحر آسر و در این در روایات ما هم داره روایات اهل سنف هم داره که از شیاطین پس کنید ما استحر نوشتن زیبه به استاد کرسی عزیز سلیمان بودشتند و بعدی مرزان گفتن عزیز سلیمان به این مقامات که رسید به خاطر این بوده ببینید که انما یک نقطه واقعی وجود داشته و اونی که امور غیر متعارفی از عزیز سلیمان سازه شده اما متعارفی از آصف برکی ها به اصطلاف تفت میفهمن؟ وقتی یک ازده از یهود بعدها همین اوتو کتاب به است. اینا آمدن یک توجیهاتی ها سی دو کردن در این دو امره غیر متعارف یکی قصه ی حضرت سلیمان و یکی قصه ی آسر. چون حضرت سلیمان خب تصفیل جن و غش رو نگرد و حیوانات و دواب و همه چی در خیارشون بوکیاتین همه رو در اختیار داشت. اینا آمدن این ظاهرش اینطور ظاهر آیه مبارکه به نظر من آیه اجمال ارده که خیلی باز نکنیم چون بعضی مطالب فاسد اگر باز بشه بعد از نفوس زعیفه میرن اونجا هستن تمایل پیدا میکنن وقت این زایفه یعنی مجموع آیار اینجور میفهمیم اینها این یهود مدینه به جای اینکه که بقر... به توراس مراضیه کنن رو کنار زدن به این نوشتار این نوشتاری هم که اصل و نصب درستی نداشته تو این نوشتار ظاهرا احتمال قوی عنوانش هم این بوده ما و شیاطین و علامرک سلیمان احتمال میدم که چون تط واقعا رو مبهم شده خیلی مبهم شده شاید این ارهام به خاطر خود عنوان اصلی بوده میگم در کتب اهل سنت دو تا عنوان نوشتن خیلی عجیبه اینجا ما دو تا عنوان می‌بینیم یکی عنوان ما و شیاطین علامرک سلیمان بعد ما اون زل الملکین بهباد لهاروت آماروت احتمالی اینم عنوان دوم بوده، اون نوشتاری که بوده، عنوانش این بوده ما اون زل الملکین بهباد لهاروت آماروت و ما یا علمانه من اهدن حتی یا گویا اینا نحنفت این ما نحنفت نه فلا تفوت اه همه آل تا اینجاش تا این قسمتش احتمال قوی من میدم چون اون دومی هم مشکل عربی پیدا کرده ما یعلمان من اهده گفتن ما یعلمان من اهده یعلمان تعلیم مراد به افعاله که اعلام باشه و تا که من نگاه کردم شد شدم باشه تا اونجایی که من دیم یا خیلی چاز قرارت درستی منصول نیدیم که یعلمان قرارت کرده یعلمان مراد یعلمانه اما قرارت یا یعلمان قرائت شده لذا میگم در تفاسیر بلا خدا تعلیم مراد نیست خبر دادنه اعلامه تعلیم چه مشکلی میگن اونا تعلیم نکردن خبر به این نما نحن فتنه این تعلیم نیست اصرار تکذیب نه مستر رو میگم من نکته دارم چون و ما اون زله الملکین به بابل هاروت و ما زما یعلمان من اهده حتى يقولوا انما نحن في مثل این به نظر من چه این عنوان و نوشتار دومیه فیتعلمون منهما این فیتعلمون مال این یهود مدینه است راح این کلمه منهما هم احتمالا از این دو نوشتار باشه نوشتار اولی ما و شیاطین علی ملک سلیمان نوشتار دومی ما انزل علی الملائکه اما الان اده زیادی از مفصلی تقصیل کنگر تعلمونن ناس منهما من, من الملکه بعضی هم آمدن گفتن یه تعلمون منهما یعنی از این سهر و کف منهما رو به سه و کف برگردون دارد من احتمال نمی اگر آیر اینجوری که من به ذهنم میاد معناه باشه این شبه هم برداشته میشه فی اگر تعلمون برمیگرد به همون یهود مدینه نه فریق فریقون من الازین او نبر سری قلمنل از این اتول او کتاب اون فریقی که ننظر کتاب الله و راه ظهوره اونا یک علم اون از این دو از این اوتال کتاب یکی عنوانش بوده ما و شیاطین ارامال که سبانان یکی عنوانش این بوده ما اون زله عللملکهین به بابل و آمرووط و مایو علمان منعه هده این عنوان این دو نوشته بوده فید تحلمون این یهود مدینه من هما مایو فرقون دیهی بین المرع و زوجه اگه اینجور معنا بشه هست بنابراین در این آیه مبارکه اسم این دونه رشتار آمده قد یک نقطه هست این نقطه در قرآن هست در قرآن به طور مثل یوسف و هر و از تختیر لدم بکن که انما انسان احساس اونو در این قراعت با یک فاصله بریداره پس در حقیقت این شدی. یک یک اتبعو این اهل یهودی س... که این کار کردن این نوشتار های مجبور الهویی این دو نوشتار یکیش تطل و شیاطین علامور که سلیمان بوده بعد اینجا جمعه معترضه خدا میپنند و ما کفر سلیمان ولکه نشیاطین کفر رو یعلمون الناس از سه کفر هم تعلیم سحر نه انجام دادن سحر. ولیکن نه شیاطین که برو یا علمون الناس اینجا مراد استعمال سحر نیست یاد دادن سحر. اونه که کفره یاد دادن سحر. یا علمون الناس است این یه جمله معترضه یه جمله معترضه به این کتاب اول ماستدل و شیاطین علامور که دو ما اوضاع لال دل ملکین به بابل هاروت و ماروت و ماي علمان من اهلین اه احتمالا همین ماي علمان من اهلین اه در خود عنوان کتاب بوده حتی یا گل این نما نحن فسنت فلا تحقه حالا بعد اجازه اون لحظه که فیلم دیگه که میخوام برگردم اونجا نه اینکه توضیح ندهم بعد میگردم توضیح آدم بعد میفرماد سعی تعلمونه این یهود مدینه که اینه که گفتیم که این نوشتار من هما از این دو کتاب ما فرقون بهی بین المرع و زوجه بعد خدا هم و ما هم به وارین بهی من عهدن الله به ازن الله این از سهر نیست این خیال نکنه ای که مال شیادینه یعنی مال جنبه سهر اون که هست یک نظام الهی تکیمی نیست این طبقه اون نظام الهی پیش میده شیاطین هم داخلی در اون نظام الاجه که بعد عرض میکنن. و بعد می و یه تعلمون ما یه رو هم ولا یرفع هم باز یه تعلمون همون یهود بعدم خداوند متعاق می اینکه که در اون سهریتین ها دارن که ملک این مثلا بودن اون نقاط مصبت هم بوده یعنی ممکن بوده از اون کاری که به ملک نسبت داده شده پس که مثلا یک کل بدن انجام بدن ت درختایی میوه زودتر می برن یا آفت پیدا نکنه خودقط بکنه. لا که این یهود مدینه این قسمت های مثبت و انجام نمیدادن قثت های منفیر انجام دلقه میدادن ویمون مایور رو هم و لایم فا انجام نمیدادن. و لقدعل بازم علممون برم گرفت یهود مدینه لمن اشتراح، مالهم فی الاخره من خلا کسانی که به اونا پول میدن در مقابل این کار اینا چیز ندارن حالا این اشترا احتمال داره انجام دادنش بشه احتمال داره بزد پول باشه ولده استماشه رو بیان حسام اینا کار خودشون در عالم بدی وارد کردن لوکان و یعلمون. حالا چه ش... لب استماشه رو بیان حسام لوکان و یعلمون ان بعد الله در شون اینا چون وقتمون شده الان هم به همین یک کلمه اکتفا و اما این کلی آیه و به نظر ما هیچ که نداریم که مشیله هم نداریم چیز عویسه یا اون ابداع احتمالاتی که مرحوم آیه توازه بایی خرمزن توش نبود و اما اون جمله معترضه و ما کفر سلیمان ولکه نشیاطین کفرون این ما کفر سلیمان احتمال داره در سیاق این آیه ناظر باشه چون بگه ولکه نشیاطین کفرون مختفرون شدیدیم و علمونن نازسته تعلیم سه یعنی مخا می‌گن حضرت سلیمان تعلیم سحر نداشه. یک احتمال اینه در آیه که ظاهر آیه. یک احتمال دیگه این باشه که اینجا ناظر فقط به این مسئله سحر و اینها نباشه. من دیروز عرض کردم در کتب اهل تورات در خود تورات نسبت داده شده کفر به سلیمان. اصلا در تاریخ نرف شده که یکی از اشکالات یهود به پیغمبر این بوده که این پیغمبر میگه سلیمان نبی بوده در که سلیمان نبی نبوده مثلا که از اشتباهاتی کنید و تازه روزا می‌خواستم بیارم کتاب تورات رو بخونم یادم رفت بیارم, بیارم کتاب مقدسه بیارم من دیروز به تورات رسانه اشتباه بود در اسفار خمسه میشه مثلا های نزد سلیمان در اسفار خمسه نمیاد این اشتباه بود بعد از اسفار خمسه تو کتاب پادشاهان که الان دقیقاً نمیدونم کتاب کیه بخش اینا رو برام اعمال ملوخیرای کیک پادشاهان شو ارث بعد از اسفار خمسه بود 66 ساله هم هست که به مجموعهش اش میگن توی اهدعتی هست نه اینکه نیست اما من خیال تو اسفار خمسه هست میشه مراجعه کردم تو اسفار خمسه نبود توی کتاب پادشاهان بود ان شاء الله فردا اونجا سراحتا به عزاد سلیمان کف نسبت میگن احتمال داره که این آیه ناظر به اون جزای کلی یهود باشه فقط می‌فرمایید ناظر به فضای کلی یهود باشه که ما کافر سلیمان یه